سقراط میگوید زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد. هوا 3 خلق سوال از هوا سقراط خود باش. بسیاری از مردم سوال کردن را ناراحت کننده تلقی می کنند. آنها سوال کردن را به بیاطلاعی، گیجی یا حتی بدتر از آن امتحان شدن نسبت میدهند. اما دیدگاه ما متفاوت است و نشان می دهیم سوالها می توانند راهنمای الهام بخش فهم و بینش باشند. در واقع عمل خلق سوال برای خودتان گام ژرفی به سوی فهم است. حتی اگر سوال پرسیده پاسخ داده نشود. سقراط شاید به دلیل روش خلق ایدهها مشهورترین فیلسوف تاریخ بشر باشد. او با طرح سوالات مهم و آزارنده در برابر شاگردان، دوستان و حتی دشمنانش آنها را به چالش می‌گرفت تا به کشف‌های تازه دست یابند. اگر سقراط شخصی شما همیشه همراهتان باشد و با سوالات درست به شما تلنگر بزند، قطعاً به طور حیرت انگیزی موفق میشوید. در واقع سقرات دائمی امکان پذیر است زیرا می توانید سوالات را چنان خلق کنید که فرض را به چالش بگیرد و به بینش منتهی شود شما می توانید سقراط خودتان باشید سرفن برای پرسیدن از دیرباز مردم بر این باورند که پاسخ دادن به سوالات موجب پیشرفت می شود در واقع خلق سوال اگر نه بیشتر اما به اندازه جواب اهمیت دارد زیرا طرح سوال خوب توجه شما را به نکات درست جلب کند به یاد دارید که در فصل قبل ماری چگونه جواب اصلی سوال درباره بینهایت را نه فقط با اشتباه کردن بلکه با طرح مکرر سوالات پایه به دست آورد دو سوالی که ماری به آسانی از خودش طرح کرده بود یعنی آیا راه حل درست است و چگونه می توانید راه حل خود را بهتر کنید؟ صورتبندی بندی سوالات عادت ذهنی خوبی است که شما را به درگیری عمیق با دنیا و تجربه درونی متفاوت سوق می دهد. طرح سوالات چالش برانگیز از خودتان می تواند برای کشف فرسای پنهان، جلوگیری از پیشداوری، داوری، افشای ابهامات تشخیص خطاها و ارزیابی گذینه به شما کمک کند. سؤال کردن می در جهدیابی گامهای بعد به سوی فهم عمیق‌تر و حل خلاقانه مسئله کمک کند. جوابها چگونه به پرسش ها منتحی می شوند؟ هر طرح و شرایط خاصی می فهرست منابع بیپایان سؤالات ارزشمند باشد. سوال کردن را به زمانی که جواب را نمیدانید موکول نکنید حتی اگر جواب را میدانید پرسیدن چه می شود اگر راه مناسب مشاهده بیشتر و واکاوی عمیق است اگر از تحصیلات رسمی چیزی به جز ذهنیت پرسش دائمی چه می شود اگر نصیب شما نشده است پس بدانید بزرگترین منفعت را به دست آورده اید سوالات چه می شود اگر شما را به نگرش تازه درباره جهان دعوت می کند. زیرا شما را وادار می کند وضعیت موجود را به چالش بکشید و حدود فهم خود را ارزیابی کنید. عادت طرح سؤال به شما کمک می کند نادیده هایی را که باید خلق شوند ببینید. چالش ترژیک: در 28 ژانویه 1986، پرتاب شاتل فضایی چلنجر در نتیجه یک انفجار با شکست فاجعه باری مواجه شد. کمیته ریاست جمهوری هیئت تحقیق تشکیل داد و ریچارد فایمن، فیزیکدان نظری مشهور از کل عضو آن بود. تحقیق در اینجا به معنای فرایند یادگیری از راه پرسیدن است. یکی از واقعیت‌های اساسی فاجعه دمای بسیار کم هوا در شب پیش از پرتاب بود. در ویدئوهای پرتاب، ظاهراً لحظات پیش از پرتاب بین دو قطعه موشک ناهمخوانی کوچکی رخ داده بود. این قضیه به تحقیق درباره های اوشکل بین قطعات موشک پرتاب شده منتهی شد. مسائل مهندسی فوق بسیار پیچیده است و به دانش شیمی، فیزیک و مکانیک نیاز دارد. اما دکتر فاینمن صرفاً با طرح سوال چه می شود اگر کشتانی بست او شکل سرد را آزمایش کنیم درست به قلب هدف زد. در واقع او این آزمایش ساده را به صورت زنده در برنامه تلویزیونی تحقیقات اجرا کرد. او یکی از حلقه های او شکل ناسا را برداشت، آن را با بست سی شکل کوچکی محکم کرد و در لیوان کاغذی مملو از آب یخ فرو برد. پس از بیرون آوردن بسته سی در برابر دیدگان تمام بینندگان در سراسر سر کشور لاستیک سرد به شکل دایری قبلی خود بر نگشت. معممای حل شد. پیشتازان هر حرفه از طرح سوالات احمقانه ترس به خود راه نمی دهند. البته احمقانه صفت مناسب این سوالات نیست. منظور ما در واقع سوالات پایه است. سوالاتی که شاید از این که پیشاپیش جواب آنها را نمیدانید دستپاچه شوید راهبرد شخصی دگرگون کننده اما چالش برانگیز این است که به آگاهی بیش از حد واقعی تظاهر نکنیم به ابهام و ناآگاهی تکیه نکنید اگر مطلبی را نمیدانید آن را به سرعت قبول کنید و فوراً عمل کنید سؤال کنید اگر نام رئیس جمهور را نمیدانید یا تعداد اتم هیدروژن در ملکول آب یعنی هاش او را از یاد برده اید یا حاصل هفت زبدر هشت را نمیدانید برای خودتان لطیفه بسازید یا از دوستی بپرسید اما در هر صورت از پنهان شدن دست بردارید و عمل کنید شگفت این که هنگام پرسیدن سوالات پایه به احتمال زیاد دیگران شما را باهوشتر تلقی می کنند و مهمتر از همه این که شما در نهایت در سراسر زندگی خود بیشتر و بیشتر میآموزید. این روی کرد موجب می شود نسبت به حالت تظاهر به دانش بیش از حد واقعی موفق تر باشید معلمان موثر دانش آموزان خود را به پرسیدن سوالات بنیادی تشویق دعوت و حتی وادار می کنند سوالات خردمندانه ای چون چه می شود اگر حلقه او شکل فشرده را در لیوان آب یخ فرو ببریم می تواند دنیا را تغییر بدهد قلبه بر پیش آیا به یاد دارید که سایه ها رنگ آسمانند؟ این واقعیت غیرمنتظره به ما یادآوری می کند که مفاهیم سوگیری و پیش داوری پیشپنداشته دیدگاه ما از جهان را رنگامیزی می کند یکی از عادات جرف افراد متفکر این است که ابتدا به های خود اقرار و سپس آگاهانه بر آنها غلبه می‌کنند طرح سوالات چالش برانگیز مفید است با صبر و حوصله موضوع را از دیدگاه مخالف بررسی کنید و سوالات کاوشگرانه و دشوار بپرسید چنان که موزه اولیه شما را به چالش بکشد بیرحمانه با خود صادق باشید و واقعیت‌ها را ببینید نه آنچه را انتظار دارید به پرسیدن این سؤال عادت کنید که آیا واقعا می دانم؟ و ادعاها را کورکورانه نپذیرید همه چیز و همه کس را به چالش بکشید از جمله مرعوب معلم ها نباشید در آنچه نمی دانید خود شما بهترین مرجع به شمار می آید. به خود اعتماد کنید، از پرسیدن سوالاتی که باید بپرسید نترسید و چنان شجاع باشید که هنگام کشف نکته مبهم طرز فکر خود را تغییر بدهید. جور دیگری نگاه کنید به اندیشیدن به این نکته عادت کنید که چیزها از دیدگاهی متفاوت چگونه به نظر می آیند. سوالات را به شیوه های مختلف بیان کنید. چشمانداز های بدیل به نگرش ها و بینش های نوع منتعی می شوند. با سوالات ریاضی می توانید به شکل عددی، نموداری، جبری یا فیزیکی به موضوعات فکر کنید. با مباحث اجتماعی می توانید به شکل اقتصادی، جهانی، محلی و تاریخی فکر کنید. علاوه بر این، می توانیم از دیدگاه تکاملی به موضوعات بنگریم و از اسباب تغییرشان جویا شویم. چگونه این تأثیرات با گذر زمان موجب تغییر می شوند و در آینده چگونه تغییر می کنند؟ بکوشید بین ایده ها در رشته های مختلف ارتباط برقرار کنید. از خود بپرسید آیا مهارت ها، نگرش ها و روش ها در یک موضوع را می توان در مورد موضوع دیگر یا کار و زندگی به کار برد یا خیر؟ به تجربه ما دانش آموزان با این ذهنیت نه تنها در کلاس بلکه در زندگی بیرون از مدرسه نیز بسیار بهتر از کسانی عمل می کنند که دیدگاه فوق را نادیده می گیرند. همه چیز با هم هماهنگ می شود و یک پارچه واکنش نشان می دهد. گام دیگرگون کننده سؤال کردن را بردارید. اگر آزمونی پیش رو دارید با نوشتن یک آزمون دست به کار شوید. پیش از موعد، فهرستی از سوالات امتحانی خوب فراهم کنید. چند روز آن را کنار بگذارید و بعد به سراغش بروید و از خود امتحان بگیرید. تعمل درباره سوالهایی سؤالهایی که به گمان شما در آزمون می این سؤال را پیش میکشد. کشد. ایده های اساسی این مطلب کدام است و آیا واقعا آنها را میفهمم و به طور مجازی آزمون را در شرایط دیگر، در بستر اطلاعات، یا مهارت خود مانند آمادگی برای مصاحبه یا سمینار درسی بنویسید. تجربه آزمون نویسی روشی فوقالعاده پیش از تجربه شرایط واقعی است. آیا مباحث را به خوبی می‌دانید تا سؤالهای خوب را تشخیص بدهید؟ اگر نمیدانید پس مطالب را هم به خوبی فرا نگرفته اید و باید عمیق‌تر شوید. سؤالها در شناسایی نقاط ضعفتان به شما کمک می‌کنند. و مطالب شما را در زمینه بزرگتر قرار می‌دهند به یاد داشته باشید اگر نمیتوانید سوال تر کنید برای آزمون آماده نیستید روش برانگیختن تفکر مؤثر درس بدهید تا یاد بگیرید ایده یا مطلبی را در نظر بگیرید که میخواهید بهتر بفهمید سپس فهرستی از سوالات بنیادی تهیه کنید که به شما برای توضیح کامل کمک کند. از جمله انگیزش، مثالها، مرور و جزئیات مطلب. با آن سوالات و جوابهای مرتبط یک درس کوتاه آماده کنید و آن را به مخاطب مانند خانواده، دوستان یا حتی معلم ارائه دهید. از آنها سوال کنید و به این وسیله ببینید چقدر پیام خود را فهمیده و به خوبی بیان کرده اید. مثال علامت سوال مارک معلم موفق ریاضی دبیرستان است. از او پرسیدم چه زمانی به راستی حسابان را فرا گرفت؟ او جواب داد زمانی که اولین بار درس دادم. بهترین راه آموختن مطلب درس دادن آن است. هنگامی که مبحثی را درس دهم، با سوالات بنیادی فراوان مواجه می شوم مثل انگیزش یادگیری این مطلب چیست؟ مثالهای های پایه کدام است؟ بر برچه جنبههایی از مطلب تمرکز کنم؟ مزامین بنیادی کدامند؟ چه چیز ایدهها را به هم مرتبط می کند؟ ساختار کلی چیست؟ جزئیات مهم کدام است؟ این سوالات مرا به کشف اصل موضوع و مشاهده دقیق آنچه واقعا میفهمم؟ و آنچه هنوز باید بیاموزم راهنمایی می سقراط سقرات خود باش در اپیزود لباس رزم از سریال تلویزیونی سانگفلد جورج باید با مقامات اداری سازمان یانکیز درباره مدیریت ریسک صحبت کند اما در مورد خواندن کتابی برای آشنایی با موضوع تنبلی میکند. پس از چند تلاش مصحک ناموفق از کمک دستپرورده جوان از همه همجابی خبر خود ابی برخوردار می شود که جورج را مربی خود می داند ابی از اینکه جرج جورج باید وقت خود را صرف آموزش او کند گید شده است و جورج به او می گوید زمانی مانند او که اکنون درباره مدیریت ریسک چیزی نمی داند تازه کار بود است ابی به ناشنایی با موضوع اقرار می کند و جورج با فریب از او می خواهد کتاب را بخواند و به او توضیح بدهد. به نظر شما در انتهای داستان چه کسی مبانی مدیریت ریسک را می‌آموزد؟ آیا آمادگی استاندارد واقعا شما را آماده می کند؟ در بسیاری از کلاس ریاضی تنها فرصت دانش برای تمرین ایده‌ها و روش‌های پیش رو انجام دادن تکالیف مقرر و منظم است. دانش آموزان غالبا تمرین ها را بدون عجله و شب هنگام در اتاق خود انجام می دهند، در حالی که روی تخت دراز کشیدند، موزیک گوش می دهند و برای دوستانشان پیامک ارسال می کنند. سرانجام تکالیف دیر هنگام تکمیل می شود. اما ارزشیابی اصلی چگونه است؟ از طریق چند آزمون فشرده و زمانمند به این صورت که دانش در کلاس خشک خالی روی صندلی های کوچک در احاطاط دیگر دانش به همان اندازه مسترب مینشینند. ما؟ نویسندگان این کتاب با تحقیق درباره ارزش آموزش راستین به روش مسابقه دوی سرعت آکادمیک به این نتیجه رسیدیم که روش ارزشیابی فوق، رایج و متداول است. بنابراین سؤال ما این است که چه وقت شیوه عملکرد خوب تحت فشار محدودیت زمانی را به دانش آموزان می آموزیم؟ پاسخ هیچ وقت تعجبی ندارد که بسیاری از مردم فوبیای ریاضی دارند. آموزگاران برای آماده موثر مؤثر دانش آموزان باید نحوه عمل در شرایط مشابه آزمونهای اصلی را به آنها بیاموزند. مثلا معلمان میتوانند در کلاس تمرین های فشرده شهستانیی بدهند که دانش آموزان به سرعت آنها را حل کنند و معلم همزمان با داد و فریاد دانش آموزان را به سرعت عمل بیشتر فراخاند. این دوره های به ظاهر تند و تیز دانش را به تمرین تمرکز گیج نشدن و درگیری سریع و دقیق با مطالب وادار می کند. در آزمون های واقعی دانش تحت فشار شدید آشفته نمی‌شوند. در مقام دانش آموز تکالیف را در سریع ترین زمان ممکن انجام بدهید. این سؤالات را بپرسید. تکلیف را با چه سرعتی می توانم انجام بدهم؟ در مدت سی دقیقه حتی اگر همه را درست حل نکنم چه مقدار از آن را انجام می دهم؟ شما اکنون برای امتحان بزرگ آماده می شوید و همیشه می توانید برگردید و هر خطایی را که هنگام تمرین مرتکب شده اید اصلاح کنید بنابراین هنگام آماده شدن برای هر کار از خود بپرسید روزانه چگونه کار کنم تا برای آزمون آینده آماده شوم. خلق سوال کنجکاوی شما را تقویت می‌کند عادت سوالانگیز اگر میخواهید از آنچه چه می یا می‌بینید حد اکثر بهره را ببرید خود را وادار به پرسیدن کنید هنگام درس گرد همایی شنیدن موسیقی تماشای تلویزیون یا اثر هنری عمل کرده کسانی که سوالات معنادار فراوان می‌کنند از کسانی که درگیر ایده ها نمی شوند بهتر است همواره سوال کنید و به آن پاسخ دهید. این قالب ذهنی شما را به ارزیابی بهتر مسائل سوق می دهد. اگر معلم یا مدیرید به جای پرسیدن سوالی هست، فرض کنید هست و بگویید 6 ثانیه با بغلستی خود مشورت کنید و دو سوال بنویسید. سپس به طور تصادفی از یک گروه بخواهید سوالات خود را بخوانند. یعنی به جای پرسیدن سوالی هست، به شاگردان بگویید باید سوال خلق کنند عادت مهمی که باید برای آموزش و کنجکاوی مادام العمر تقویت شود حتی اگر مجبور به نوشتن سوالتان نباشید، دائما برای خود سوال طرح کنید. البته پرسیدن سوالات طرح شده نیز تمرین فوق‌العاده‌ای است، زیرا به وضوح بیشتر مطلب کمک می‌کند و به طرح سوال نشان می‌دهد شما واقعا به مسئله فکر می‌کنید. اما حتی اگر سوال نکنید، طرح سوال به تنهایی ارزش فراوانی دارد. نوشتن آزمون شخصی پیش از امتحان یا آزمون کوتاه ایده خوبی است. اما منتظر نمانید هر روز خود را در جایگاه ارزیاب آزمون قرار دهید و درباره آنچه میشننوید میبینید یا میخواانید آزمون شخصی خود را طراحی کنید. از خودتان بپرسید اگر کسی بخواهد بداند که آیا واقعا ایده ها را فهمیدهام از من چه سوالی می کند؟